بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعليه وصحبه اجمعين اما بعد در فترت میخوان ببندیم اخرین مبحث فترت از دلایل توحید بله مطلبمون امروز اینه که فترت دلایل داره بر سن توحید ما جلسه گذشته به اشاره کردیم هفته گذشته لیکن الان میخوام بحث بازش بکنیم. فترتی که خداوند در ما گذاشته خداوند فترت الله التي فتر الناصر عليها این فترت دلالت بر وجود خداوند رو داره و دلالت بر سن و توحید توحید رقوبیت اسما و صفاد و توحید توحید علوهیت وقتی که خداوند آدم را به عنوان پدر بشریت پدر بشر خلقت میکنه و فرزندان را مشخص میکنه فرزندان آدم تا قیام ساعت از فرزندان آدم که ماها هم جز اونها بودیم گواه میگیره و دخل را بکنم این بنی آدم این دروری هم درریت هم و اشهد هم الانفوسیم الستو بر رب بکنم قالو بله بر رب بکنم آیا من پروردگار شما نیستم گفتن آری. پس بشریت در اساسشون پاکن از لحاظ اعتقادی فقط به الله اعتقاد دارن الاس تو برای بکن بله فروردگاه نیست ما گفتیم بله پس ما در اعتقادمون درباره باره خداوند اعتقاد پاکی هست ما غیر از خداوند به عنوان قدرت کل به عنوان سمیع علیم به عنوانی که کاملترینه و ارحم و هیچ کسو قبول نداریم و این آیه دلانت کلی و مجمل داره بر سنو توحید یعنی لازمه این که خداوند اقرارمون که خداوند پروردگار لازمه اینه که خداوندم پرسیده بشه از محصفاتش هم باید قبول داشته باشیم چون وقتی که ما قبول داشته باشیم خداوند برمان یک رب لازمه اینه که باید مسئله اعلا هم داشته باشه چرا ما رو خلقت کرد؟ چرا ما از ما گواه گرفت؟ حتما یک کاری از ما خواسته لازمه این اقرار عمل هم هست وقتی که اقرار, اقرار بر یک شخص میگیدی تو فلان کارو کردی؟ خب میگه بله خب پس توبیخی بعد در اعضای اون اقرار هم باید باشه و اگر قرار بر این باشه که توبیخی نباشه اگر قرار باشه محاسبه ای نباشه خب چه هدفی هست که مثلا من به الفرز شخص زیر سوال میگرم تو فلان کارو کردی یا نکردی؟ پس حتما یک معاتبه یک سرزنش یک توبیخی بود باشه پشت قضیه که من دارم گواه میگیرم از اون طرف میخوام حتما یک یه چیزی هست که میخوام بهش مسئولیتی هست که میخوام واگذارو بکنم پس لازمه اقرار گرفتن از بندگان بر ربوبیت اینه که چی تعهد بدن در عمل اقرار بکنن که عملم بکنن و جلالتی این آیه هم بر اینه که انسان اگر سالم باقی بمونه کسی نیاد یهودیش بگه قناحاریش که قبلا بیان شد انسان به ذاتش مسلمان تسلیم شده خدوانده و خداشناسه این به نفس این آیه قرآن اما به نفس اون حدیثی که ما داشتیم ما من مورود لله یود فبواه ی حویدانه آیه مجسانه که ما داشتیم بازم این حدیث دلیل بر اینه که انسان خداشناسه چون اگر ما ببینیم این حدیث در ذات خودش میاد امتها و ملتهای منحرف را ذکر می که در عقیده منحرف شده نصارا آمدن گفتن که چیه عیسی فرزند خداست منحرف شدن در اساس توحید یا مثلا مجوز آتش برستن یا مثلا یهود گفتن عزی فرزند خداست یا گفتن ما فرزندان خداییم بحث انحراف در خود خدا بنده این امتها و این امتهای منحرف که از اساس کتاب آسمانی منحرف شدن و فکرتشون عوض شده در احس کتاب آسمانی همه این ها دارن الو حسین اهل دیتن اسنریت که ما میدونیم مجوسیات درش موندی و خود از ما ما مسلمونی که الانم هستیم کتاب آسمونی یکی از طرف هممون الله رو داریم به عنوان کل لیکن بعدا ها انحراف پیش که حیونی که به دنیا میاد سالمه از طرف خداون یک دین عند الله الاسلام و باتی محمد کوشا رو گریدیم چشمارو کندیم و بیرون رو بردیم از داخل حدقش ما بگور کردیم خودمونو یا بشریت خودش رو خودشون بودست خودش رو خودشونو گمراه کردن پس اساس یکیه و اساس نباید درش انحراف باش پس اون فطرت یکسانه و همه ماها ها بر اقرار بر خداون لیکن انحرافات بعدن پیش اومده همطور که در ادامه حدیث میاد کما تن تجل بهیمت تا آخر روایت به چیزی که این روایت رو میکنه، یعنی تبقي الا اين آيه و اين حديث كه الا اصل اختلافاتي كه بين معتزله و اشعاع ما گفتيم انشراح صدري به هم و يك آرامشي به هم ميده حديثي صحيح بخاري صحيح بخاري و در صحيح الله الله عليه و سلم يقول الله لا اله و عذابا لو ان لكما في الارض منشیل کنت مفتدیم به خدا به کسی که کمترین عذاب رو در جهنم داره میگه آیا اگر به اندازه دنیا مرک داشته باشی آیا میای فدای فدا نجات یافتن از جهنم بکنی قال نعم اون شخص جهنم میگه آره میگه که فقط سألتو خدا من میبید فقط سألتو که ما هو احوان من هاده و انت فی صلب آدم خدا من میبید بهش که من کمتر از این از تو خواستم وقتی که در کمر آدم بودی Allah tushrika bi uchli gazat khassam Allah tushrika bi ke shirk be man niyari bahs uluhiyat khodavan Allah tushrika bi fa abayta lash sh va to ham na khasi magar inke mushrik bashi pas khodavan iqrar bar rububiyat va uluhiyat az insan ha gerefte iqrar bar rububiyat va uluhiyat be nas alaan ayah va be nas in hadisi ke ma tani hadis qudsi hast ke dar riwayat bukhari va یک شناختی داره که این شناختش نیازی به نظر رسلال ل... رسل نداره نظر رسلال که یایتون هست منحج معتذره به اشعاره که انسان باید شک داشته باشه بعد از شک بیاد مثلا نظر رسلال رو بکنه ماه چگونه بیرون اومد بحث ابراهیم رو میکنن نبیدنم ماه چگونه بیرون اومده ماه چگونه ساخته شده انسان در ذات خودش برای شناخت خدا و نیاز به نظر و رسلال نداره فط میتونیم بفهمه نیازمند خدا هست و خدایی باید باشه شاید یک شبهه ای پیش بیاد معلومه این که اگر فطرت انسان دلالت بر اسلام داشته باشه پس چرا فلاسفه اهل کلام اشاعره و معتزله فطرت رو انکار کردند اساس فطرت به عنوان اسلام شناسی چرا این کارش کردند جواب درونشینی اولا کسانی این مسئله را انکار کردند که از علوم شرعی بدور بودند از جهمی ها و فلاسفه کسانی که اصلا متأثر به فکر اسلامی نبودند متأثر به فکر عرسو و سقراط یونان بودند که تمامی سلف انکار کردن و به بزهمتش او شمردند این اختلاف از اهل اسلام نبوده نبود اساسش اسلامی نبود این اختلاف اختلاف از کجا آمده؟ از غرب اومده از یونان اومده از فکر ارسطو و سقراط اومده مسلمانان اختلاف نداشتن در بحث فترت اختلاف وارد شده وارد اسلام شده اختلاف اسلامی نیست اشاعره و معتذره و دیگر فرقه ها متأثر به فکر فلاسفه شده دو بومن خیلی از علوم هست در نفس انسان هست خیلی از صفات هست در نفس انسان هست لیکن تا وقتی که موقعیتش جور نیاد جور نشه اون صفت از انسان بروز نمیکنه انسان نمیتونه اون صفتش بروز نمیده در خودش. مثلا بالفرض انسان هایی آلا کسانی که اززواج کردن بچه کوچک رو میبینن خوب میفهمن. یک بچه کوچک در خونه هست لازم نیست که کسی ببینه چگونه مثلا بالفرض میتونه بره برای کمود مثلا. خودش قشنگ برنامه میکنه حالا با اون قدرتی که خادمان درش رو داشته سفل میاره یا سبد رو میاره، صندلی رو میاره روی هم بالشتایی هم میذاره میری باره اون کمود و اون کبد برای خودش یک برنامه ریزی میکنه آیا این قدرت قبل از انجام گرفتنش نبوده در اون شخص؟ این قدرت بوده درش این صفت، این فهم و در که چطور بره بالا میتونه بره بالا درش بوده که اومده نقشه در خیال خودش بالشت رو بذاره، نمیدونم صندلی رو بذاره روی هم بره بالا پس نمیشه گفت چون هنوز پیدا نشده یا هنوز اون چیز چیزو در خودش نشراخته یا انجام نگرفته در نفسش نیست مثلا نمیشه گفت این طفل نمیتونه بره بالا نمیتونه تشخیص بده که آیا میتونه بره بالا یا نه دو سالش بیشتر نیست ولی میتونه قشنگ از پنجره هم بپره بیرون یا مثلا از جمله مثال هایی که ما میتونیم بزنیم یک سری های اختیاری هست در انسان مثلا خودمون کلا جامعهمون شاخه مذهبی بحث نیت کردیم برای برای وزو گرفتن یا برای نماز نیت در قلبه نیت قصد و ارادت درسته؟ نیت کردن قصد و ارادت. خب اساس فترت همه اینه من قصد کردم فرانکار را انجام بدم قصد کردم فرانکار را انجام ندم و این چیزی که صحابت و در سر لیکن الان چی شده؟ این صفتی که در نفس انسان هست و انسان باید بدونه فکر میکنه که باید تلفز هم بهش داشته باشه این نیت که قصیه هست قلبی هست برای نماز خوندن فکر میکنه که باید باید با زبانش هم بگه تا اینکه اون مطلب قلبش حاصل بشه فطرتی که در نفس انسان هست نیاز به نطق نداره که زبانش مثلا به حرکت درگه یک صفت هست در ذات انسانه صورت میکره لازم نیست که چی به زبان اجرا بشه الان اینهایی که به زبان اجرا کردن بر خلاف باطنشون تلیل بر این نیست که باطنشون همون چیزی هست که بر زبانشون هست. درسته؟ چون زبان بحث زبان گفتار یه چیزی است اون چیزی که در نهاد انسان است یه چیزی دیگر هست. محبت هم همینطور. محبت خداونم به ادعا نیست. محبت خداونم در نفس هر کسی هست. لیکن الا ما هستیم که منحرفش میکنیم ما هستیم که چی ما هستیم که اون محبتو کم رنگ میکنیم یا اون محبتو زیر پا میذاریم ولی ها که خداوند اصل محبت خودش رو در ماها گذاشته با انسان رو مفتور خودش کرده حالا این بحث این شبهه رو فقط همینطوری مختصر جوابش بدیم لیکن بحث دلالات فطرات بر خصوص دعوت سنعت توحید توحید و ولوحیات و اسماء و صفات. نگاه بکنید دلالت فطرت من میتونم در سه مطلب خلاصش بکنم دلالت فطرت بر انواع توحید از نظر استدلال از مسائل علمی دقیق‌تره ماشاالله از لحاظ عقلی راحت بیایید حالا چند جلسه هم نیاز داریم چون یک جلسه دیگه نیاز داریم که حالا مسائل دیگه که میتونیم با اون اثبات بکنیم وجود خداوند مثلا از گفتم سر خلاصانه گفتم از طریقه آخرین متله بگذاشت این فطرت خب قرصه الحمدلله آخرین متله بگذاشت این فطرت دلالت, دلالت فترت از دلالت فعق قوی تره الان ما میخواهد ثابت بکنیم چطور دلالت فترت از دلالت عق و دلالت مسائل علمی بر سنوع توحید قوی تره اولا انسانی که در مصیبت میفته سوار قایق شده سوار کشی شده داره غرب میشه وقتی که میخواهد غرب بشه دس یکی برمی داره دست بر کجا بلند میکنه به الله و اذا مس الانسان ضر دعانا او قاعدا او قائما ضره مر كان لم يدعنا انساني که چه دوان دوان الله الله بسره زبانشه همونطوریه آیه 12 انسان اگر فطرت اگر نیست چطور مشرکینم کسانی که مرد پرست بودن و بود پرست بودن چطور در مصیبت ها میان میگن الله الله پس یک الله شناسی در نفس انسان هست که انسان یک دفعه احساس میکنه یک قدرت برتری هست که میتونه نجاتش بده همون قدرتی که انسان رو با این عظمت خلقت کرد میتونه اون خداوند عظیمی که این عظیم را ساخته این مشکلات عظیم و بزرگ را زیر پا بگذاره و اون شخص رو نجات بده نسان از عظمت خودش میدونه که یک قدرت عزمایی هست که این عظمت برای شید چی نیست این امواج و این دریا و این تلاتو میدونم موجه ها برای, برای اون شخص هیچ چی نیست اون شخصی که این آسمان و این زمین و این همه ستاره ساخته دیگه یک آب براش چیزی نیست پس انسان در نفس خودش احساس داره که یک قدرت برتری هست. احساس انسان. لازم نیست که اون شخص درس فیزیک خونده باشه، شیمی خونده باشه، یا ستاره شناسی خونده باشه. لازم نیست که دیبروم داشته باشه، یا سیک داشته باشه. خود به خود. خود به خود این چیز در نفس انسان میاد. دو بومن. پیانبران فرستاده شدن برای توحید ولوهیت درسته. ولقد بعتن فی کل امت رسولا انعبود الله، واشرط المطاوعه توحد عبوديته توحد لهيته ياخذوا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ان يوحى اليه وما ارسلنا من قبلك اي محمد قبلسفيان برانا نفرساديم لن يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فاعبدون توحد عبادات الا الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اي 25 سوره الانبياء هیچ پیانبری نبوده که بیاد بگه مثلا به فرض استدلال بکنه با مسائل منطقی فلسفی عقلانی بخواد بیاد مناظره بکنه با اقوامش که بیاد مثلا بگه با شما نظر استدلال داشته باشید شما باید شک بکنید شما باید فلان بکنید تا اینکه به وجود خدا پی ببرید. پیانبران خدا من چینین نبودن چرا؟ چون ذات اقرار به توحید رو بیاد ذات شناخت خدا من در نفس انسان ها هست انسان در ذات خودش خداشناس هست خاطر همینه که چه پیانبران وقتی که می اومدن می گفتن یا قوم الله انعبدالله درسته؟ پس یه چیزی هست یک مقدمه یک پشت زمینه پشت پردی دارن که دارن این پیانبران به خودشون اجازه می دن کنها رو نصیحت بکنن وادار به پرستش رو عبادت بکنن بله اگر قرار بود انسان خداشناس نبود باید پیانبران می اومدن استلال میکردن، باید میامدن، مناظره میکردن، از فلسفه استفاده میکردن. پس چون که کاری رو نکردن، پس انسان خداشناسه. و اون چیزی که تایید میکنه، اولا، اگر ما میگیم، بیدی بی این صورت میگیم، در تایید همین مسلم در سفر استادانش نفیانبران برای علوهیت است بر ربوبیت، اگر اقرار به خدابند و ربوبیتش امر فطری نبود، پیانبرانی که فرستاده می شدن اولین مسئلهی که بازگو می کردن برای امتشون توحید رو ببین بود پس چون چینین نبوده پس انسان در ذاتش خداشناس هست ولی این رو می گم. توحید رویت اگر بازگو نشده و توحید رویت بازگو شده بازگو شده از طرف پیانبران دلیل بر این نیست که یادی نشده و تذکری از ربیتش شده یاد شده ذکر شده ولی نه که به عنوان اساس اساس دعوت الوهیت و ربیت اگر بازدو شده به عنوان اصلی که متضمن چیز دیگه هست مثلا بفرض خداوند در سوره بقره میگه ای انسان سعبدو ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلی تکتفون عبادت بکنید چون خدا شما رو خلقت کرده ربوبیت ذکر شده ولی کی چی متضمن الوهیت کہ یا یوحنا سعبدو یا مثلا در بحث صاحب یسین داریم در سوره یسین که لا اعبد الذی فطرنی و الیه لا اعبد الذی فطرنی سبب میشه که خلق کرده به معنا من اصطلاحیشو معنای و اون من بهش برمیگدم پس لازمه توحید روبوبیت چی هست؟ توحید الوهیت اگر توحید الوهیت خطاب قرار داده شده آخرش در قرآن بحث دولوهیته دوبومن اگر اقرار به خداوند و روبوبیتش فطری نبود اشخاص مخاطب کسانی که دعوتشو میدادن پیامبران میتونستم بگن در مقابل فعبودون در مقابل اکمه رو بپرسید راحت میتونیسن بگن ما که خدا رو نشناختی کی رو بپرسییمش چرا نگفتن چرا مثلا قوم ایوب قوم شعيب قوم ابراهیم قوم فلان و فلان همه پیامبران خداوند همه گفتن این آیه و ما و ما ارسلنا من قبلك مرسول الا نوح اليه انه لا اله الا انا فاعبده خداوند ما طرف خدا اومدیم مرا بپرسی چرا معارضی نگنیم که بیاد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 از پیانبرانش و از خود از خوصان از محمد مصطفی به عنوان مذکر تذکر دهنده یاد نمیکرد چه موقع من تذکر میتونم بگم من متذکرم یک امر پیشین باشه که تذکر بدم یا در باره خود قرآن تذکره و ذکره قرآن تذکره است انسان را بیاد میدازه درست بیاد یعنی یه چیزی هست که ما را پس. یه چیزی بوده، یه چیزی هست در نفس ما، خدا،, خدا من پیانبر رسل الله علیه وسلم فرستاده به عنوان تذکره، به عنوان یاددهنده و یاداور کننده، به عنوان مذکر، درسته؟ اگر نبود، هیچوقت مذکر نبود، درسته؟ معلم بود، فقط معلمی رو یاد میکرد، ولی چون مذکر رو یاد کرده، به عنوان یاداور کننده، دلیل بر اینی که چی؟ یک مطلب پیشین هست در نفس انسان که اومده اینها اومدن اینها اصلاحش بکنن در ماها سه و من خطام بحثمون بحث الزام قرآن کسانی که دوچار شرک در علوهیت شدن خداون اونا را توبیخ میکنه بر اساس روگویت ابو لحبش بگیر ابو جهلش بگیر کسانی که مشرک شدن خداوند دوست زدشون میکنه بر اساس شناخت فطری خداوند. چون خدا رو میشناسه خداوند میکنه، توبیششون میکنه. محمد مصطفی الله علیه و سلام من يرزقكم من السماء والارض تشكاسي هس که رزق و روزی تو میراشنه. و من يدبرن امتا بت کی میاد الله خدا من گوشتتشون میکنه توبیغشون میکنه شمایی که خدا شناس هستید و میگید که الله خالق و رازق و مدبره پس چرا واسطه قرار میدید پس چرا مرد پرسی و بدپرسی میکنید این آیه سیویک و سیوده سوره یاسیم بود سوره یونس بود و قل من یارزق کم نستمی برد این استفهام است بر توحیق روبیت قل من یارزق کم. این سوال استفهامی کی هست که رسولدی می رسونه کی هست که زنده, زنده می کند و می می, می است اون چیزی که قرار گرفته در نفس انسان خدا بر اساس اون داره به ما توبیخ یعنی به ما گوشتت میکنه شما بر اساس این اقرارتون بر وجود من اقرارتون بر خالقیت من رازقیت من باید من رو بپرسید این چینی خدا من توبیخ میکنه انسان ها یا مثلا از همین سیغیه هایی که پیانبران استفاده می کردم برای گشدد امتاشون قالت رسولهم اف الله شک قالت رسولهم پیانبران خداوتی که می به اقوامشون بقوم می گفتن اف الله شک آیا مگه در خداوند شکه نه جواب چیه هیچ شکی در خداوند نیست هیچ شکی در خداوند نیست پس امتی نبوده که وجود خداوند انکار بکنه پس اقرار به وجود خداوند امر فطری هست و غیر فطری امر فطری است اقرار به وجود خداوند امر فطری هست حالا با توجه به فرخ صداشن پیامبران با وجود اون مصیبتایی که مادرش واقع می‌شید و با وجود اقرار ابو جهل و ابولهب و دیگران از سران قریش خداوند اینجوری یاد میکنه از بشری که این کسانی که بت بود پرست می‌دن اگر امر اقرار به فطری نبود خداوند هیچ وقت سرزنش نمیکرد و هیچ وقت اولها با ابو جهل و اینا و توبیخ نمی کرد و را نمی اونها رو عذاب نمیداد. اونها میپرسیدن ولی کی رو میپرسیدن؟ بوتا رو میپرسیدن. بین خودشون خدا واسطه قرار میدن. ولی با این وجود مذموم واقع شدن. چون پیام خدا را نپذیرفتن. چون اون چیزی که لازمه اون ایمان داخل ایمان قلبی بود فطری بود عمل بهش نمیکردن. کردن، نطق بهش نمی کردن. همونطور که در بحث همون یهودی بود. سفیه میگوید همسر رسول الله صلی الله علیه و آله پدرم او سفر رسول الله حرم میشناختن قشنگ میشناختن از خود رسول الله صلی الله علیه و که پیانبر خداست ولی که اینج همون میگه که به پدرم گفت که چیکار میکنی چی چه موقفی داری و به هم گفتن که ما باج دشمنی میکنیم میکنی هر چنکی رو بر چون از ما بر گزاشه شده جههای شقته جههای استکباره جههای کینه هست. مثلا بحث ابلیس وقتی که استکبار میکنه از سجده کردن استکبار و کبره نمیخواد خودشو کوچک میکنه نه اینکه قبول نداره اصل وجود خدا وجود خدا را قبول داره بلی نمیخواد حرف خدا را بفنزیده این مشکل بشریت اصل وجود خدا فرستادشونان و پیانبران به عنوان گوش زد کنندگان قبول دارن ولی که هوای نفس برای اونها غلبه میکنه و دنبال هوای نفسشونه و پشت میدن به بعد پس این استفهان اف الله شک است به معنای نفس و این انکار برکسانی هست که این نفی را قبول دارن یعنی قبول دارن که هیچ کس غیر از خداوند نیست یعنی جواب چنینه که در خداوند هیچ شکی نیست یعنی اون خطاب پیانبران چنین بوده به در خداوند هیچ شکی نیست شما هم میدانید که خداوند هیچ شریکی ندارد ولی که شما جهد و انکار میکنید و به خاطر این هست که من دارم این چنین توبیخ کنان بهتون مخاطر قرار میدم قالت رسلهم اف الله شکلا چه به عنوان جمعشون تمامی پیامبران چه به عنوان فردشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا آدم پس این آیات دلالت بر این داره که هیچ چکی در وجود و اقرار به خداوند ندارن پس انسان ها خداشناسند انسان ها خدا را میشناسن ولی کن وما قدر الله حق قدره والارض جميعا طبته يوما قيامه وما قدر الله حق قدره دوجادر قران بيان شده یک رسول انق درسری انا ضختی خدا بند از اینا یاد میکنه بعد از اینکه بحث از پیامبران میشه ابراهیم و فرسان فلان و فدرسان ولی با وجود بندگان چقدر ناشکرن ناسپاست بعد میاد بگه خداوند و ما قدر الله حق قدره قدر خدا را ندونستن اونمتانی که نابود شدن قوم سمود و قوم لوت و هر قومی که بودن نابود شدن و رفت قدر خدا را نشاخدن و اینجا هم در سوره زمرو ما قدر الله حق قدره هم خداوند نشناسی قد نشناسی بندگان را یاد میکنه با وجود که میگه و الارض و جمیعه قبضه و سماوت و مطویات و بیمینه با وجود خلق آسم و با وجود فرستادن این همه پیامبران برای دلالت و ارشاد، با وجود این سنتی که شما می‌بینید صحیح بخاری و مسلم این همه علما جان خودشونو دادن. این همه قرآن و این همه تفاسیر، این همه تفاسیر قرآنی که نوشته شده، این همه زحمات، این همه مدارس دینی، این همه نمیدونم تلویزیون و رسانه ها و اخبار ها و فلان و فلان، نوار کمه، سیدی کمه، کتاب کمه، چی کمه؟ ولی کی هست که خداشناس باشه؟ کی هست قدر الله رو بدونه؟ یخش همین دل علمما رو اما هستن که از خدا می هستن کسانی که دنبال علم کسانی که دنبال فترتشونن کسانی که دنبال اصلاح ح فطرت خودشونن خودشون وابسته به خوددا میدونن. ولی که کما از اون اشقات ک قدر خدا را میدونن و دنبال خودو ناسی باشن و دنبال این باشن خودشون رو به خدا نزدیک بکنن. انسان مشکل در انسانی که خودشون نمیخواد به خدا نزدیک بکنن. دنبال مسائل پوچی هست دنبال مسائلی که... جزه آلا از جهتی لحوال حدیثه حرفایی بهوده آلا چرا موسیقی باشه چه ترانه باشه چه نمیدونم فیلم ها و سریال ها که پر از دروغ و پر از فحشا و منکر و پر از مبتزلاته انصاف خودشو منحرف کرده خودشو آبسته کرده به این سیری تجمعات و به این سیری به این سیری چیزه هایی که انسان رو خدا نشناس میکنه. به خاطر همینه که خداوند این چینی سخت وارد بندگان میشه و این آیات اگر خوب در اشتب اگر اگر تمعن و تفکر داشته باشیم انسان قلبش واژگون میشه قلبش دگرگون میشه وقتی خداوند سرزنش میکنه و ما قدر الله حق قدره بندگان قدر خدا رو نا نادونیسن یعنی با این وجود که این در فطرت انسان خدا گذاشته خداشناسی کتاب ها گذاشت پیامبران فرستاد این همه چیز ها ولی با وجود انسان نماز سره نیست طاعات سره نیست دوباره طلب علم نیست دنبال بار تفکر در قران ایز. چند بار ما تفسیر قرآن کردیم؟ چند بار دنبال بار نبی دا صحیح بخاری رو دور کردیم؟ چند بار صحیح مسلم رو خوندیم؟ آیا خداوند فردا سرزنه چهو نمیکنه؟ گوشمون نمیگیره فردا که چرا دنبال بار صحیح بخاری نگبودید؟ چند بار این اقوال بگر من همینطوری وحیش کردم بر محمد مصطفی؟ دین همش ارزشمنده. دین از طرف خداونده. چه قرانش، سنتش؟ چه لُب بشو چه قشرش ما دیگه دینو تقسیم پوستو هستاش پوست پوستو هستاش از طرف خداوند محترمه چه اون لب مغزی هسته‌ای که قران و چه اون پوسته‌ای که سنت مصطفی صلی الله علیه و آله چون ریش گذاشته نشه چه اون پیراهن کوتاه کردنشه چه موسیقی گوش هر چیزی که هست از طرف خداوند اومده مقدسه و محترمه حالا ما آیا قدر این مقدسات رو فهمیدیم آیا دنبالش بودیم واقع از صمیم قلب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 چرا دنبال دین نیستیم؟ چرا دنبال تدیون نیستیم؟ دینداری نیستیم؟ چرا دنبال استفاده از وقتمون؟ استفاده از فرستهامون؟ از این نمیدونم وسائلی که خدا من بهمون داده؟ مگر دین خلاصه شده در شیخ فلانی و فلانی و علانی در دانشگاه مدینی یا در دانشگاه فلانی و فلانی؟ دین در اینها خلاصه نشده. هر کدوم از آن ما... ما میتونیم راحت دنبال تلویه ال باشیم. همون نمیدارم شویخی که هست نواراشون هست. همون کتاب که هست. فقط ما دلمون بکشه. فقط ما این قدر, نش... قدر شناسی رو در خودمون انگیزه سازی بکنیم. شکوفاش بکنیم. این قدر این قدر شناسی. این فطرت در نفس ما هست. حب خداوند. حب دین خداوند در نفس ما هست. ما این کارش نمی کنیم. لیکن ما باید پرغرشش بدیم. ما باید بهش تطریقاتی بدیم. باید بهش اهمیت ها و مسئولیت ها بدیم که این مسئولیت ها ازش به نحبه احسن استفاده بکنید. جلو به خودمان بذاریم صحیح بخاری و مسلم چقدر درشت استفاده کردیم جلو به خودمان بذاریم قرآن چقدر درشت استفاده کردیم این چیزهایی که از طرف خود خدا بنده چیزهایی که خدا خاصه ما مقدسشو بشموریم پس اینها جز علامات های هست که تمامی طلاب علبا جلو مکتفی خ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 سردی میاد نمیدونم دوری از دین میاد خستگی میاد نمیدونم افسردگی میاد همه اینها ها میاد این خدشه ها در صورت بیاد که انسان قدرتمند نشه انسان بادقبی باشه از این فترتش به نحو احسن استفاده بکنه پرورشش بده تا اینکه که بوتونه باشه که قدشناس خداوند و دین خداوند باشه سبحانه که الله و بحمده سبحانه که سبحانه که و سلالله علی محم